چیزهای دیگری در جهان هست خرخ لویس برخست درست وقتی میخواستم آخرین امتحانم را در دانشگاه تگزاس شبه شهر هاستن بگذرانم خبردار شدم که عمویم، ادوین آرنت در مرز دور افتاده جنوبی برای سار اتصال شراعین درگذشته است همان احساسی به من دست داد که از شنیدن خبر مرگ کسی با آدم دست میدهد آگاهی اندوه بار و دیگر بیفایده از اینکه اگر اندکی مهربان تر بودیم چه چیز را از دست می دادیم؟ آدم فراموش می کند که خودش هم در واقع مرده است که با مرده های دیگر گفت و گو رشته تحصیلی من فلسفه بود به یاد داشتم که عمویم در خانه سرخ نزدیک لماس بدون به کار گرفتن حتی یک اسم خاص پیچه های دلپذیر آن رشته را برایم کرد. یکی از پرتقالهای روی میز شام برایش وسیلهی شد تا مرا با ایدئالیسم برکلی آشنا کند و با استفاده از صفحه شطرنج پارادکس الهی را برم توضیح داد سالها بعد های هینتون را به من امانت داد که میکوشد واقعیت بود چهارمی را در مکان ثابت کند و خاننده را تشویق میکند تا از طریق تمرینهای پیچیده‌ای با مکعب های رنگی این برد را مستقیما درک کند آن منشورها و هرم‌های را که بر کف اتاق مطالعهش برپا کردیم هرگز فراموش نمی‌کنم. امییا مهندس بود. اون پیش از بازنشسته شدن از کارش در راهان تصمیم گرفت در تور زندگی کند که هم آن خلوت و انزبای انزبای طبیعت روستا را رو داشت و هم به بوایناس ایرس نزدیک بود. کاملاً طبیعی به نظر می رسید که معمار خانهش دوست گرما و گلستانش، الکساندر مویر باشد این مرد عبوس و سختگیر پیرو اصول عقاید خشک متعصب ناکس متعصف ناکس بود اما یه مثل اغلب جنتلمن های زمان خودش مردی آزاداندیش یا به عبارت بهتر بیدین و لاهدری بود اما در این حال با لاهیات هم علاقه داشت همطور که به مکعب های سفزت آمیز و فریبنده هینتون و به داستان های دل آور و کابوسگونه دوره جوانی ایچی ویلز علاقمند بود. سکا رو دوست داشت. سگ گله بزرگی داشت که به یاد شهر دوردست زادگاهش لیجفیلد سامویل جانسون صدایش میزد خانه خانه او روی تپهی قرار داشت که سمت قرب آن را زمین های باطلاقی کرده بود. ردیف کاش های جلوی دیواره بیرونی نمی هوای سنگین و خفقاناور آن مهند را کند. خانه سرخ به جای پشت بام که آدم بتواند در شبهای گرم و دم کرده روی آن هوایی بخورد صفی نکتیز از کاشی سنگی داشت و برج چهار گوش با یک ساعت بزرگ به نظر می رسید که این سازهها بر دیواره ها و پنجره تنگ خانه سنگینی می کند. در کودکم این واقعیت های زشت را پذیرفته بودم همانطور که آدم، همه چیزهای ناجوری را قبول می که صرفا به دلیل همزیستی و شرکت داشتنشان در هستی جهان خوانده می شود. در سال 1921 به وطنم برگشتم آن خانه به حراج رسیده بود تا به پرداخت شود. یک خارجی آن را خریده بود مردی به نام ماکس پرتوریوس که مبلغی دو برابر بر بالاترین مبلغ پیشنادی در حراج پول داده بود بعد از امضای سند و فروش شبی همراه دو دستیار آمده بود و همه مبل و ها همه کتابها و همه اساسی ها را در زبالدانی نزدیک جاده نظامی ریخته بود من نمودارها و ترحهای هندسی کتابهای هینتون و آنکوره جغرافیایی عظیم با خشکیها و دریاهایش را با اندوه بهخاطر میآورم فردای آن روز به سراغ مویر رفت و پیشنهاد کرد که در خانه تغییراتی بدهد مویر، با خشم و نفرت پیشنهادش را رد کرده بود بعدا شرکتی از بوینوس آیرس انجام این کار را براهته گرفت نجارهای آن روستا حاضر نشدهند اساسی تازه خانه را بسازند بالاخره مردی به نام ماریانی از اهالی گلو شرایطی, شرایطی را که پریتوریوس تعین کرده بود پذیرفت او بایسی به مدت دو هفته شبها پشت درهای بسته کار میکرد و شبها بود که صاحب جدید خانه سرخ زندگیش را از سر میگرفت. گرفت. های خانه دیگر هرگز باز نشد. آدم می در تاریکی لرزش نور را تشخیص دهند. یک روز صبح شیرفروش به جسد سگ گله برخورد که سر بریده شده و اون مسئله شده آن در خیابان افتاده بود. در زمستان آن سال کاش های جلوی خانه را قطع کردند هیچ کس دیگر هرگز پریتوریوس را ندید. ظاهرا او اندکی بعد کشور رو ترک کرده همونطور که خاننده میتواند حدس بزند اینجور خبرها مرا ناراحت میکرد میدانم که من در کنجکاوی انگشتنما هستم خصلتی که مرا به کارهای جور و جور میکشند. مثلا ازدواج با زنی که مطلقا سنخیتی با من نداشت فقط کنجکاو بودم که بدانم کیست و چجور آدمی است مصرف لودانوم بدون نتیجه رضایت بخش بررسی بر و کشف ارقام و اعداد عالیه و درگیر شدن در ماجرای وحشتناکی که دارم داستانش رو تعریف میکنم چار این نبود و تصمیم گرفتم که از این ماجرا سر در بیاورم اولین قدمم رفتن و دیدن آلکساندر مویر بود مویر در خاطرات من مرد بلند بلندبالایی بود که لاغریش قدرت و ب... قوت بنیهاش را پنهان نمی کرد. اکنون با گذشت قوز سیاه و سفید شده بود. اکنون با گذشت سالها قوز کرده و ریش سیاه و براغش سفید شده بود. او جلو, او جلو در خانهاش در تمپرلی به من خوش امد گفت گفت.واسانی میتوان حد زد که خانهش شبیه خانه امویم بود. چون بنای هر دوی این خانه ها با میارهای سخت و بدون اتافه آن، شاعر خوب و معمار بد ویلیام موریس متابقت داشت گفتگوی من سخت بود بی خود نیست که بوته خار نماده اسکاتلند است با این همه من دقیقا حد زدم که آن چای سیلان پررنگ و آن ظرف کلوچه ها که میزبانم لای آنها را باز میکرد و کرمی مالید انگار که من هنوز بچم در واقع زیافت ساده کالوینیستی کمخرجی بود برای خوشامدگویی ببرد از داده دوستش های او با عمویم درباره الهیات مثل بازی شطرنج طولانی بود که هر بازیکن روی همکاری حریفش حساب می‌کرد. مدتی گذشت و من نتوانستم مطلبی را که ذهنم مشغول کرده بود مطرح کنم. سکوت ناراحت کننده ای برقرار شد و سرانجام مویر به حرف آمد. گفت: جوون یقینا شما برای این به خودتون زحمت ندادین که به اینجا بیایین و با من درباره عمو اموت ادوین یا ایالات متحده گفته گو کنی شوری که برایم چندان جالب نیست اون چیزی که شبا خواب و از پرنده فروش خونه سرخه و اون آدم عجیب و غریبی که خونتونو خریده راستش این مسئله خواب اثر منو هم پرانده صادقانه بگم به طور کلی این ماجره برای من خیلی ناگوباره با این همه هر چی که میدونم به شما میگم هرچند اطلاع چندانی هم ندارم لحظهی بعد با تعنی ادامه داد قبل از مرگ ادوین شهردار منو رو به دفترش شهر کرد. کشش ناهیم اونجا بود اونم میخواستن نخشهی برای ساختن یه نماسخونه کاتولیک بکشم پول خوبی هم به من میدادن من بیدرنگ جواب خودم با اونا دادم و گفتم نه من خادم خداوندم من نمیتونم با, با پروا کردن مهرابایی برای پرستش بوتها مرتکب عمل شنی بشم. در اینجا سکوت کرد. من با احتیاط گفتم همش همین؟ نه. اون پریتوریس بدجهود میخواست من کار خودم رو خونه که ساخته بودم رو خراب کنم و بجای اون یک چیز مهیب بسازم. شناعت شکل‌های گوناگونی به خودش می‌گیره. اون با وقار بسیار این کلمات را عدا کرد و اونگاه از جاو بخواست سر چار راه که پیچیدم دانیل ایویر را به من نزدیک شد ما هم دیگر را می شناختیم که مردم شهرهای کوچک هم دیگر را میشناسند. او پیشنهاد کرد که با هم قدم بزنیم هرگز حوصله هم صحبتی آدم های شرور درد ساز و پرت و پله هایشان را نداشتند و حدث میزدم که یک انبان داستانهای میخانه یک کسیف و خشونت بار و کما بیش جلی در بساط دارد اما به پیشنهادش تندر دادم و گفتم حاضرم با او قدم بزنم هوا تقریبا تاریک شده بود ایبرا با دیدن خانه سرخ از دور از دور بر روی تپه ناگهان راهش رو عوض کرد من دلیل این کار رو پرسیدم جواب او چیزی نبود که انتظار داشتم او گفت من دست راست دون فیلیپ هستم هرگز کسی نتونسته بگه من از چیزی ترسیدم و پاپس کشیدم احتمالا شما اون پسر ارگوهی رو به خاطر دارین که اون همه را از مرلو تا اینجا به جستجوی من اومده بود و به خاطر دارین که وقتی منو پیدا کرد چی به سرش اومد خوب گوش کنی. چند پیش داشتم از یک زیافت حسابی برمیگشتم. حدود 100 قدم مونده به این خونه یه چیزی دیدم اصفم رم کرد و اگه من محالش نکرده بودم تو این کوچه نپیچیده بودم شاید دیگه نمیتونستم این داستان رو تعریف کنم چیزی که من دیدم سرش را تکان داد و اون وقت با عصبانیت فوش داد و لعنت فرستد اون شب خواب به چشمم نیامد نزدیکی سبی دیدم. یک طرح سیاه خلمه سبک بیزنسی را در خواب دیدم هرهی که قبلا هرگز ندیده بودم یا اگر دیده بودم فراموشش کرده بودم تر یک جور هزار تو تر یک جور هزار تو که امفیتاعتری سنگی بود و دور تا دورش را درخت سرف گرفته اما دیوارهایش بلندتر از نکه درخت ها بود هیچ در یا پنجره در کار نبود اما ردیف هایی بیپایان که عمودی سوراخ سوراخ شده بود من داشتم از یک ذره بین استفاده می کردم تا مرد گاف سر را پیدا کنم. بالاخره دیدمش هیولای بزرگ و مهیبی بود بیشتر به بوفالو شبیه بود تا گاو و بدن انسانیش روی زمین دراز کشیده دراز بود به نظر میرسید خوابیده است و خواب میبیند اما خواب چی یا کی آن شب از جلوی خانه سرخ گذاشتم دروازه داخل هزار قفل بود و چند میله آهنیش کرد شده بود آنجا که روزی باغ بود اکنون پر از های حرص شده بود آن طرفتر در سمت راست گودال کم آنگی بود و کناره آن لگت مال شده بود من هنوز یک ورق در آستین داشتم اما بازی به با آن را چند روز برقب انداختم نه فقط چون حدث می زدم چقدر بیفایده است بلکه چون مرا به آن امر اجتناب ناپذیر می کشند. آن امر نهایی دست آخر بدون امید چندانی به گلو رفتم ماریانی نجار که حالا دیگر سلنا سالی داشت یک ایتالیایی چاق و سرخ و سفید بود. مادی با احساساتی بسیار دوستانه و بیالایش. لعنتی که او را دیدم از نقشه‌ای که روز قبل آنقدر مطلوب به نظر چشم پوشی کردم. کارت شناساییم را به او دادم که نوشتهاش را با تنتن و با صدای بلند بخواند. و وقتی به کلمه دکترای فلسفه رسید مکس کوتاه و احترامآمیزی کرد. و او گفتم میخواهم درباره وسایل چوبی که برای خانه امویم در درخت ساخته چیزهایی بدنم آمد خیلی پر حرف اود اما نمیخواهم به و اداهای پایان نامپذیر او را نقل کنم اما او به من اطمینان داد که شار اصلیش این است آنچرا مشتری میخواهد انجام دهید. هر هم زشت هر قطف جسارت و گفت که همیشه به این شعار عمل کرده است پس از کندوکاف در چند جبه اوراقی را که پریتوریو هیلگر امضا کرده بود نشانم داد اوراقی که نمیتوانستم به وقتی داشتیم خداحافظی میکردیم کردیم، برایم اعتراف کرد که همه پولهای دنیا هم نمیتواند او را بادار کند تا بار دیگر قدم به شهر تورد را بگذارد چه برسد به آن خانه؟ او اضافه کرد که حق همیشه با مشتری است اما از نظر حقیر او سینیور پریتوریوس حال درستی ندارد و برای اینکه بدونم از چیست با انگشتش ضربه بین ملایمی به پیشانی زد پشیمان از اینکه زیاده روی کرده دیگر لب از لب باز نمی کرد و من دیگر یک کلمه هم نتوانستم از او در بیاورم این شکست را پیش بینی کرده بودم اما پیش بینی کردن یک چیز پیش بینی کردن یک چیز است و تحقق از چیز دیگر بارها و بارها به خودم گفتم زمان آن رشتههای درهمتنیده لایتناهی از دیروز امروز آینده همیشه و هرگز تنها معمای واقعی است چنین های عمیقی هیچ فادهای به حال من نداشت پس از اینکه اسرها را صرف مطالعه شوپنهاور یا رویس می کردم باز هم شبها پس از غروب میرفتم و در جاده های خاکی دور بر خانه سرخ حیران و سرگردان پرسه میزدم گاهی وقتها نور بسیار سفیدی را بر بالای تپه می دیدم. گاهی هم به نظرم می رسید که صدای ناله ای را می این و ادامه داشت تا 19 ژانویه. یکی از روزهای باین سایدس بود که آدم احساس می کند نه تنها تابستان به او اهانت و تجاوز کرده بلکه خار و خفیف شده است آن شب حدود ساعت 11 بود که ابرهای طول توفانی ظاهر شدند ابتدا باد جنوب وزید و انگاه رگبار ها ها و سیل از آب از آسمان فروریخت من در تاریکی به این سوانسو می دویدم تا درختی پیدا کنم که زیرش پناه بگیرم ناگهان در نور تند سائقهی متوجه شدم که در چند قدمی, آن حسار, در چند قدمی حسار آن خانه نمیدانم از ترس بود یا امیدواری که دروازه را امتحان کردم به طور غیرمنتظره ای باز شد سیره ضربات طوفان به درون محبتی خانه رفتم هم زمین و هم آسمان مرا پیش می‌راند در ورودی خانه هم نیمه باز بود رگبار باد چهرم تازیانه زد و من به داخل خانه رفتم در داخل خانه کاشی‌ها را برداشته بودند در هر قدم انبو های خود رو را زیر پایم حس میکردم بوی کمی شیرین اما تهاو واری خانه را پر کرده بود در طرف راست یا چپ مطمئن نیستم کدام طرف به راهپلهای سنگی برخورد کردم هر طور بود از آن بالا رفتم تقریبا بی اراده دستم کلید چراغ را پیدا کرد اتاق غذاخوری و کتابخانه‌ای که در خاطرم مانده بود اکنون با تخریب دیوار هایلشان یک اتاق بزرگ ویرانه شده بود و چند تکه مبل اساسی اینجا آنجا پخش و پلا بود سعی نمی‌کنم آنها را وصف کنم چرا که با وجود آن مور سفید و بیره مطمئن نیستم آنها را واقعا دیده باشم بگذار توضیح بدم برای اینکه آدم واقعا چیزی را ببیند باید آن را ابتدا درک کند. یک مبل یا بدن انسان مفاصل و اعضای آن رابطه که قیچی به عمل بریدن مربوط است درباره یک چراغ یا یک اتومبیل چه توان گفت؟ آدم وحشی و بدویل نمیتونه واقعا انجیل مبلغین را درک و مشاهده کند مسافر کشتی هرگز نمیتواند مانند کار کشتی آلات و اسباب آن را ببیند اگر ما دنیا را حقیقتا و به درستی میدیدیم شاید آن را میفهمیدیم هیچ یک از شکرهای بیمنی و بیجانی که آن شب دیدم نه ربطی به اندامهای انسان داشت و نه کار قابل درک دیدن آنها در آدم وحشت و درد ایجاد میکرد در یک گوش نردبانی عمودی پیدا کردم که به طبقه بالا میرفت. پلههای پله های پهن آهنیان که کلن بیشتر از دهتانه نبود با فواصل نامنظمی روی هم سوار شده بود. اون نردبان که برای بالا رفتن از آن داشت داشتن دست و پا لازم بود به نوعی قابل فهم بود و اندکی خاطرم را آسوده می کن. را خاموش کردم و مدتی در تاریکی منتظر ماندم. کوچه صدایی به گوش نمی رسید. اما حضور اشیای قابل درک، غیرقابل درک مرا می بالاخره تصمیم خود را گرفتم در طبقه بالا دست لرزان من بار دیگر چراغ را پیدا کرد کابوسی که قبلا در اتاقهای پایین به نمایش درمده بود در طبقه بالا ادامه یافته و کامل میشد. آنجا اشیای زیادی بود یا چند شیه در هم تنیده اکنون یک تکی از آن اساسیه را به خاطر میآورم که دراز و به شکل نیم دایره بود. و مثل یک میز جراحی خیلی بلند بود و در دو سرش دو دهانی مدر داشت حدث دادم شاید این تختخواب مورد استفاده ساکین این خانه بوده که این شی به طور غیر مستقیم بندی غلاسایش را نشان میداد همانطور که استخانبندی یک جانبر یا یک رب و نو از روی سایهش تشخیص داده میشود ناگه کلمه آنفیس با اینار بر زبانم آمد من این کلمه را سالها پیش در اثری از لوکان خانده بودم و بعدا آن را فراموش کرده بودم این کلمه چیزی را الگام میکرد که مقدر بود بعد ببینم همچنین آینه هایی به شکل هفت را به خاطر میابرم که در سایه های بالای محو می میشدند راستی کسی در این خانه اقامت دارد باید چه شکلی باشد؟ او در اینجا در این سیاره که حتما برای اون همانقدر وحشتناک است که او برای ما چه می از کدام واندی پنهان فضا یا زمان از کدام برزخ باز... باستانی و از کنون ناشناخته به این هومه شهری در آمریکای جنوبی و دقیقا به این شب خاص رسیده است احساس کردم که من ناخوانده و سرزده بی اجازه به درون هاویه یا آشوب ازلی قدم گذاشتم بیرون باران بند آمده بود به ساعتم نگاه کردم و با تعجب دیدم حدود دو صبح است شراخ را روشن گذاشتم و با احتیاط شروع کردم به پایین آمدن از نردبان پایین آمدن از چیزی که یک بار از آن بالا آمده بودم ناممکن نبود باید پیش از آنکه ساکن این خانه برگردد به پایین برسم فکر کردم که او در ورودی خانه دروازه را قفل نکرده چون نمیدانسته چطور باید قفل کند پخوام تازه به پله ماقبل آخر نردبان رسیده بود که صدای بالا آمدن چیزی را از پله شنیدم. چیزی سنگین و کند و چنگانه. کنجکاوی بر تاس فائق آمد و من چشمانم را نبستم.